قاهره مصر 20 مارس 1964 بعد از من تکرار کن دخترم اشهد و ان لا اله الا الله اشهد و ان اله الا الله وان محمدن رسول الله وان محمدن رسول الله تبریک میگم اسم اسلامی هم برای خودت انتخاب کردی که در گواهی اعلام مسلمان شدنت ثبت کنم ایمان محمد عبدالرحمن شیخ از اسمی که انتخاب کرده بودم خوشش آمد و گواهی اسلام آوردنم را امضا کرد. به همراه دو شاهدم دفتر شیخ علازهر را ترک کردیم و به طرف گاردن سیتی رفتیم. به دفتر یک شیخ دیگر وارد شدیم، آغد محله. آنجا زیاد محتر نشدیم. خیلی زود سند ازدواج ایمان و کمال ازدودین را به ما دادند. دو نفر از همراهان آغد به عنوان شاهد ازدواج سند را امضا کردند. آقد و دوستانش آنقدر از دیدن گواهی مسلمان شدنم زخ زده و خوشحال بودند که به مدارک دیگر توجهی نکردند. ازدواج من بدون کارت شناسایی اصلیم و با نام جدیدم ثبت شد. آنقدر همه این حوادث سریع اتفاق افتاده بود که آن لحظه دلم میخواست جای یکی از شاهدان بودم. گویی این اتفاقات هیچ ارتباطی به من ندارد و من فقط بیننده آن هستم. دکتر پیشنهادی به من داد که فکر می کنم وجدان هر دوی من را آرام می کرد. شاید این پیشنهاد از نظر مالی هم برایش بیفایده نبود چون انتظار می رفت طرف مقابلش به خاطر این پیشنهاد به او پاداش خوبی بدهد. دکتر یک زوج مصری به نام کمال و ایمان را به من معرفی کرد. کمال به نظرم همسن خودم بود و همسرش ایمان حدود ده سال از او کوچکتر به نظر می رسید. ایمان زنی با پوست روشن و موهای شرابی بود. ویژگی های چهرش به اروپایی ها شبیه بود. آنطور که خودش به من گفت این ویژگی ها را از مادرش به ارس برده بود. خانواده مادرش از شام به مصر مهاجرت کرده بودند. کمال نیز مهندس مکانیک بود که در آلمان تحصیل کرده و برای کار در واحد مهندسی ارتش مصر به کشورش بازگشته بود. هر دوی آنها از خانواده ای مرفه بودند. ده سال قبل ازدواج کرده بودند و اکنون در محله گاردن سیتی قاهره و در امارات بزرگی که متعلق به خانواده ایمان بود زندگی می‌کردند. وقتی دکتر پیشنهادش را مطرح کرد، آرامشی که به آن نیاز داشتم، تمام وجودم را فرا گرفت. استدلال‌های او در کنار احساس گناهی که بعد از آن گفتگوی طولانی ما در من به وجود آمده بود، باعث شد پیشنهادش را قبول کنم. حداقل آنها می توانستند پدر و مادر فرزند من باشند. مطمئن باش اونها را دوست خواهی داشت. کاری که انجام میدی عذاب وجدانت را از بین می بره. شک نکن که با احساس عذاب وجدان اصلا نمی زندگی کنی. از حرفات معلومه قلب پاکی داری. اجازه نده شرایطت باعث بشه یه عمر پشیمونی توی دلت بمونه. رو دکتر مرا را به منزل آنها برد و خودش خیلی زود اجازه خواست تا برای کار به متوش برگردد. هر سه در سالن منزل نشستیم. سکوت کرده بودیم. هیچ کدام ما نمی سر صحبت را باز کند. فقط نگاه های خجولانه بین ما رد و بدل می شد. بالاخره کمال با سرفه کوتاهی گلویش را صاف کرد و شروع به صحبت نمود. من و ایمان هنوز نتونستیم بچه دار بشیم. البته راههای زیادی رو رفتیم و خیلی تلاش کردیم. کمی سرخ شد و با خجالت ادامه داد. دکترها گفتن که این مشکل منه که نمیتونیم بچه دار بشیم. ایمان وارد بحث شد و شروع به حرف زدن کرد. ما این موضوع رو بین خودمون نگه داشتیم فقط دکترمون ازش اطلاع داره. ما هم دیگر رو دوست داریم و نمیتونیم بدون هم زندگی کنیم. به همین خاطر هم تصمیم گرفتیم یه بچه رو به فرزندخواندگی قبول کنیم. و عشقمون رو با اون تقسیم کنیم. موضوع فرزندخواندگی در مصر خیلی پیچیده است. مخصوصا در فرهنگ ما و در سطح خانواده‌های ما اصلا پذیرفته نیست. ما نمیخوایم بچه ما احیانا با سوالاتی رو به رو بشه یا طوری باهاش رفتار کنن که انگار سطح پایینه. کمال توضیحاتش رو ادامه داد. طوری برنامه‌ریزی کرده بود تا کودکی که آنها به فرزندخواندگی انتخاب می‌کنند در جامعه خود سطح پایین به نظر نیاید. کاملا واضح بود که به شدت به سنت و اصول فرهنگی جامعهش احترام میگذارد و به آن پایبند است پزشکی که مرا به آنها معرفی کرد یکی از پزشکانی بود که آنها در مسیر تلاش هایشان برای درمان ناباروری با او مشورت کرده بودند وقتی مطمئن شد که دیگر امیدی به درمان آنها نیست پیشنهادی را که به من داده بود برای آنها مطرح کرد به نظر می رسید جرقه این فکر در جریان گفتگوهایش با من در ذهنش زده شده بود. او به آنها گفته بود اگر فردی را پیدا کرد که به خاطر شرایطش می خواهد سخت جنین کند به او پیشنهاد خواهد داد که به جای سخت جنین فرزندش را به دنیا بیاورد و از همان لحظه تولد کودک نامش را به عنوان فرزند کمال و ایمان ثبت خواهد کرد. اینطور که من می دیدم و از حرفهایشان می فهمیدم آن مورد ایدئال که آنها منتظرش بودن من بودم. یک زن تنها و غریب و دور از وطن که در اینجا هیچ کسو کاری ندارد. باردار است اما فرزندش را نمیخواهد و هیچ علاقه ای هم به بچه دار شدن ندارد. من باید دلیل حضورم در این کشور رو براتون توضیح بدم. از صداقت شما مطمئن شدم. به همین دلیل بهتون اعتماد می کنم و چیزهایی رو که هیچ کسی ازش اطلاع نداره به شما میگم. همون لازمه که این رو هم بدونید که با برملا شدن این راز زندگی من به خطر میفته. برق هیجانی که از لحظه شروع جلسه گفتگو چهرشان را رو روشن کرده بود لحظه خاموش شد. احساس کردم آنها میترسند من یک مجرم باشم و احتمالا فرزندم نیز این خوی مجرمانه را از من به ارث ببرد. داستان زندگیم را با اتفاقات مربوط به روزهای جنگ و از دست دادن پدر و مادرم و مفقود شدن هیلدا شروع کردم تا رسیدم به نامه تهدیدآمیزی که آن روز عصر از زیر در خانه ام در برلین به درون خزید برایشان توضیح دادم که چگونه از طریق لوکاس با اودسا تماس گرفتم و آنها چطور به من کمک کردند تا از آلمان خارج شوم کمال حرفم را قطع کرد اودسا یک سازمان مخفی که به نازی ها کمک میکنه از سرنوشت بدی که ممکن است در کشور در انتظارشون باشه فرار کنند. من فقط از طریق لوکاس تونستم از وجوده چون این سازمانی با خبر بشم. روزی که برای کمک گرفتن از اون پیشش رفتم، وقتی شنید چه خطری تهدیدم میکنه به شدت نگران شد و اونجا درباره این سازمان با من حرف زد. فکر میکنم با شنیدن داستان زندگی من، خیالشان تا حد زیادی آسوده شد درباره جزیات که برایشان تعریف کردم هیچ سوالی نپرسیدند. تنها چیزی که پنهان کردم و از آن حرفی نزدم حادثه‌ای بود که موقع عبور از زرمات به طرف جنوبا برایم اتفاق افتاد وقتی یاد آن اتفاق افتادم و کاری که آن افسر مرزی ایتالیا کرده بود به زحمت توانستم جلوی عشقهایم را بگیرم گریه کردم و ادامه دادم بعد از انفجار به طرف اتاق دیبوش دویدم. دیدم گوشه ای و پشتش را به پنجره تکیه داده. می لرزید و به جسم غرق در خون امو عبدو که نزدیک در افتاده بود نگاه می کرد. وقتی دوباره به یاد آن روز افتادم و یادم اومد دیبوش چطور در مقابل بدن خونالود امو عبدو ایستاده بود بر خود لرزیدم. بدون اینکه خودم متوجه باشم عشق از چشمانم فرو میریخت ریخت. ترس ناشناختهی تمام وجودم را پر کرد. یک فراری تنها در کشوری غریب بودم و فکر می کردم تقیب کنندگانم هرگز دستشان به من نخواهد رسید. اما حالا در ذهنم داستان می بافتم. چطور موساد توانست آیشمن را از آرژانتین برو باید؟ چطور نزدیک بود که دیبوش را در قاهره ترور کند؟ از سرنوشت تیروتاری که در انتظارم بود باز بر خود لرزیدم. آنها مطمئن به من دسترسی خواهند داشت. و من در لیست افراد تحت ترقیب آنها هستم ایمان از جایش بلند شد از جا بلند شد و به طرفم آمد آهسته بر پشتم زد بعد کنارم نشست و مرا در آغوش گرفت همونطور که عشق می رختم گفتم امو عبدو دو انگشتش را از دست داد و یکی از چشمهاش آسیب دید اما زنده موند در آغوش ایمان آرام شدم آغوش گرم و آرامش را که نیاز داشتم به من میداد. سرم را رو روی شانهش گذاشتم و با صدای بلند گریستم. در تمام این مدت احساساتم را کاملا گم کرده بودم. ایمان به من اجازه داد احساسم را به راحتی بروز دهم، گریه کنم و همه احساساتی را که همیشه پنهان می کردم دوباره بازیابم. کمال با یک لیوان آب به سمت من آمد. لیوان را به دستم داد. نگاه کنجگاهش را رو روی خودم حس می کردم. گویی میخواست مطمئن شود همونطور که دکتر به او گفته بود من کاملا سالم هستم یا نه. حس یک اسب مسابقه را داشتم که خریدار قبل از اقدام به خرید و امضای قرارداد، معاینه می میکند. من مجرم نیستم، اما فکر میکنم شما الان دیگه میدونید که چرا نمیخوام رنج و عذابی که در زندگیم تجربه کردم به بچه‌ی توی شکمم هم منتقل کنم. ایمان جواب داد: من هم اگه جای تو بودم همین کار رو میکردم. عامل فوراً دخالت کرد و گفت ولی به نظرم الان که یک انتخاب خوب دیگه هم داری احساس کردم آدم مهربان و با محبت است و قلب پاکی دارد نگاه های او به ایمان وقتی درباره ازدواجشان حرف میزد، از عشق زیادش به او حکایت می کرد. حرفهایش نشان میداد، حاضر است هر کاری برای همسرش انجام دهد حتی اگر لازم باشد به همه دنیا دروغ بگوید تا ایمان همانطور که آرزویش بود صاحب فرزند شود ما هر طور که بخوای بهت کمک میکنیم بهت اطمینان میدیم که بچه رو خوب تربیت خواهیم کرد هر کاری که از دستمون برمیاد براش انجام میدیم و هر چیزی که در اختیار داریم از اون دریغ نمیکنیم فکر میکردم در کشور شما از چشم اونها دور هستم و دستشون به من نمیرسه اما با اتفاقی که برای کارل افتاد دیگه اینجا احساس امنیت نمیکنم بعد از اینکه بچه به دنیا اومد بهت کمک میکنم تا بتونی به هر جایی که دوست داری بری نگران نباش من یه شرط دارم لیلیان به ایمان نگاه کردم منتظر شدم شرطش رو بگوید چیزی که ازت میخوام انجام دادنش برای هر مادری سخته. بهتره بگم غیر ممکنه ازت میخوام به من قول بدی وقتی این کاری که با هم توافق کردیم انجام شد هیچ وقت سعی نکنی دوباره پیشه بچت بیای یا باهاش تماس بگیری تحت هیچ شرایطی کمال گفت اگه این کار رو بکنی ظلم بزرگی کردی لیلیان چون زندگی بچت رو خراب میکنی. ما نمیخوایم اون یه روز بفهمه که با یه دروغ زندگی کرده سرم رو پایین انداختم دستم رو روی شکمم گذاشتم لحظه های سختی بر من می ذهنم در دنیای یه ناشناخته سیر می کرد بلاخره سرم رو بلند کردم و رو به ایمان گفتم بهت قول میدم.